بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام ساز کلاس استاد طالبی تادی سلام خداوند ما زوین خدمت دوستان عزادرووار تسلیت عرض میکنیم خدمت شما ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو و خداوند متعال را شاکریم که توفیق شد در این جلسه خطبت شما باش. خب من اول اصخایی میکنم با این چند دقیقه تخریم ما مال جای پارش میگشتیم دوستانم رتفیاده بودن قبلا یه لوکیشنی نقشهی فرستاده بودم برای ما ولی اون رو هم نداشتیم و دیگه طول کشید تا محل موسسه رو پیدا بودن خب حالا تا این آماده بشه خدا اگر یه مورد کابلای یه دیگه ای هست به نظرم این قبلن هم با... کار میکردیم اینا جواب نمیداد آمد آه خب, خب بحثی که قرار هست اینشالله ما ختمه شما باشیم اولا باز حالا از خواهی بکنم دیگه ارزم م... م... باشیم این برنامه هفته اینمه صبح قاعدتاً اصطلاحی وضعی اصطاعتید داشتم به ساعت مورده هم دور از اونای آقای لزار هم قاعدتاً شما خواب هستید هم شاید یه مقدار صدایی ما گرفته باشد از این جهت هم بسخانی رو خدمت تو این ساعت ساعت پیشنهادی ما نبوده ساعت محسسه بود خب موضوع بحثی که جنابای دکتر مشکانی بفتن ما خدمت شما ارائه بدیم بحث روش فهم اجتماعی از نسل بود حالا توی تبلیغات من دیدم که عنوان کلانی هم کردن که قاعدتا ما باید توی اون فضا صحبت بکنیم و به صلاح متن ما یا زمینه صحبت ما در رابط با فهم اجتماعی از نسل باید توی یا اون چارچوب معنایی نظامسازی فقری باشه. خب، حالا جلسه که قاعدتا تایی جلسه است و ما از قبل که شما نمی شداختیم متاسفانه توفق و روزو ما خدمت شما لذا نمی الان سطح اون اطلاعات که قرار به اسطلاح دیالوگ بشه، تعامل بشه بعد چی میزانی باشه یعنی شما چقدر اطلاعات دارید در رابطه با ادبیات فقه نظام ساز لذا من عذرخواهی می‌کنم از دوستانی که شاید خیلی جلوتر از چیزی باشن که من قراره به عنوان مقدمه بگم ولی مجبوریم دیگه ادبیات نظری اولیه و ابتدایی این موضوع رو خدمت شما arz خب ببینید تقریبا از سال 1390 یا نمده بود که حضرت آقا توی دیدار با اعضای خبرگان رهبری مسئله فخه حکومتی رو نه برای اولین بار بلکه حالا برای چندمین بار به انهای مختلف این بار شاید بگیم به مولوی مولدی کاملا جدی مطرح کردن که باید کرسی های درس اونم درس خارج فقه حکومتی توی قوم راه بیفته و این وجه مهمه که معمولا هم این وای نادیده گرفته نمی‌شه و به مسائل نظام اسلامی بپردازیم یعنی اگر قرار درس خارج باشه تو حوزه فقه حکومتی اینجوری نباشه که حالا یه ده بی سال هم ما دوباره یا حتی یه نیم قرنی هم ما دوباره درگیر ادبیات نظری فقه حکومتی و, و حرفو باشیم ولی علایه حال از اون زمان خیلی جدی شد این مسئله و بعضی اساتید شروع کردن خود همین ادبیات فقه حکومتی به شروع کردن در کنار این فقه حکومتی یا ادله فقه حکومتی بحث فقه نظامساز مطمئن یا نظامسازی فقه مطمئن خب این دیگه اگر ما بخواهی سابقه این بحث رو واکعاوی بکنیم یه سابقه یه لغوی و لفظی داره یه سابقه یه معنایی داره سابقه یه معنایی برمیگرده به ارزم با ما شما سابقه یه معناییش برمیگرده به داخل انقلاب اسلامی ما اوائل انقلاب که سال مثلا 1362 شاید حالا بودندیه حاج آقای روسی و اینها گفتند چرا براتون برای, برای اولین بار فرهنگستان حاج آقای سدمانیر دین حاشمی شروع کنند این بحثها رو خیلی جالبه شما اگر برید کتاب که چاپ داخلی فرهنگستان هست اصول فقه حکومت که مثلا سال ۱۶۰ مطرح میکردن مباحثه میکردن اصول فقه حکومتی، نه یعنی همین الانش هم شاید خیلی اصول فقه حکومتی مفهوم نباشه برای خیلی از ماها، ولی اون زمان ایشون مطرح می‌کنن. حالا چه وقتی که مثلا انقلاب تو بحرۀ جنگ بود، های داخلی و یعنی چقدر شخص میتونه جلوتر از زمان خودش بشه؟ حالا فارغ از تمام شاید حواشی و نخواب و حرفا کاری نداریم دیگه ما. در اون کلیت مصیب و عرزم. خب بحث نظامسازیه فیخوی حالا هده قد تو به در داخلیمون ولی قبلتر از اون محنوم شیستت دارن این رو برای اولین بار با عنوان مکتب و نظام اون هم دقیقا توی یک شرایط سیاسی اجتماعی که توی بوم عراق خاکم هست تو اصر حیات محنوم شیستت و ایشون یه دق دقیقه کاملاً اینی و واقعی نسبت به جهان اسلام داره و شاید یکی از بزرگ که بسیار بسیار از لحاظ علمی روی مقوله وحدت که میگه مقام علمی یعنی تعییون نظری پیدا کرده دیدگاهش رو توزه وحدت منوش ای صدره ولی چی شده؟ آهان همون رو بزنی؟ نه اینه چیزش هست؟ نمی آره؟ دفته های بازوهیلیه ممیدونم اون چی باید؟ ممیدونم اون چی باید؟ ممیدونم اون چی باید؟ ممیدونم اون چی باید؟ جوانه یا یا قول میدیم یه کاری نداشته باش. اوه این نه یاد بدنه است را درایم. خب بالا. بله. یشون مطرح میکنن برای اولین بار و حالا اینکه خودش هیچس چی جریاسان پیدا بیدار میکنه. ارتباطیشون با امام موسی سعیدی که توی تهران. و دانشگاه تهران اقتصاد خوندن، تأثیرشون، مباعثاتی که داشتن این ها حالا دیگه یه فصل در ولی الان حال ما از زمان ایشون میبینیم و خب جالب هم هست که با وجود اینکه ایشون تحکید داشتن یه سری از شاگردانشون بزرگانی میتونن بعدا این مسیر ایشون رو پین این های جدیدی که ایجاد کردن ادامه بدن ولی ما اتفاقی نمی‌بینیم بعد از محروم شهیست هم. که تالی تلفه هایی که بعد از ایشون شاید مکتب ایشون بودن بتونن اون خطوت رو ولی الان درس خارج فخه حسون و این که هست ای که مثلا ایشون فهم اجتماعی از نست رو میگه آقا این نقطه به اصطلاح عطف تاریخ و خواهد آقا یکی بیاد بار کنه بینید چجوری قرار نقطه عطف اونم نه مثل من یا دیگری یه شخصی که ترازه اول توی بدنه اصلی قوضه هست چون باید بیاد مثلا این فضاها رو ادامه بده منطقه خب به دلیل این که ما یه گفتمان خیلی ازم وضوع شما خاصی یه فضایی فخرسولی سنتی و جدید داریم هر کسی خیلی ازم وضوع شما این شاید هزینه رو به خودش نمیده که با ادبیات خصوصا فلسفولی بخواد این بحثه جدید رو با سولی. خب حالا این از این بگذاریم مینم که آماده نشد. می‌ریم سراغ بحث خودمون. این یه مقدمه‌ای در رابطه با اینکه آقا نظام‌سازی فرعی از دراز تاریخی تاریخیه. ولی اگر بخوایم یه تعریف خیلی اجمالی بگیم. این خب حالا آقا یعنی واقعا یعنی قرار چه اتفاقی این ما با یک کلام نظامی ما داریم حکومت اسلامی. این حکومت اسلامی یه سری خورده نظام داره. درسته؟ خورده نظام اقتصاد داره، سیاست داره، فرهنگ داره، رسانه داره. الان دوستان بازرگانی و سیما میگن که آقا ما هر چی شما گفتید همون کارو میکنه. هر کاری شما گفتید ما همون کارو میکنیم. مگه نمیگید یعنی این نباشه این نواشی این ما مسائلمون رو شما به ما چی بدی الگو بدید نه اینکه تک گذار به من بگو این حرامه این کار نکن اون کارو میکن با باجر به من الگو بده فرایند بده این یعنی چی این یعنی خورده نظام ارتباطات شما توی ارتقاات نظام ساز اونم که یک حوزه باز جزئی تری و عنوان تبلیغات بازرگان چی باید این قلگوها رو تررایی بکنه؟ آقای که ارتباط تازه خونده، خوندن اونا که خب علبیات و بسیشون مشخصی همین چیزی که آقای شایستر میگه اینه میگه همین تک تک ابواب، تحارت، صلات سوم، زکات تا حدود و قصص و دیات همین ها می تواند برای مولبوی تبلیغات رسانه رو تعیین بکنه. آقا مثلا صلا چه رپتی داره؟ عقد قرض مثلا چه رپتی داره؟ جا. بیت این فونت ها به هم ریزه از اش مثلا یا شاید همین عقد قرضی که خیلی راحت شما به عنوان یه عقد اقتصادی میخورید کنید این بتونه به شما کمک. چطور آقای شایستر میگه از روبنا به زیر زیبنا حرکت میکنید یعنی شما احکام فقهی که حصف رو میشینید کنار هم میذارید تحلیلش میکنید از دلالت منطوقی شاید بتونید یه سری اصول و قواهدی برای یه نظامتون کشید ولی از اینها میشه اغور کرد به دلالت های, دلالت های التظامی کلام برسیم بعد کاملا هم استظهار میکنم ظهور و ما همینطوره یه دونه یه دونه خواهی های یک نظام و خورده نظام رو از دل مکتب چش از دل دین چش می‌کنیم اون مکتب. لذا میگن مکتب یا مذهب این چیه؟ همیشه اکتشافیه برخلاف نظریه آقای مثلا نمیدونم آقای دورکیم قربی و دیگری که نظریهش تأسیسه متأسیسه حالا توی این, سا این کلیت نظریه هایی که برای کشف یک نظام یا مکتب آقای شایست صد مسرح یکی از اون دیدگاه ها که برای خودشون هم نیست ولی روش تاکید میکنه و یه مقاله می‌نویسه و ظاهراً هم خیلی این نظریه نظریه مهمی هست نظریه فهم اجتماعی از نسل درست فهم اجتماعی از نسل فهم اجتماعی از نسل چند بار تلاش شنیدید شنیدید یا نشنیدید؟ اینا حالا دیگه ببینیم چه میزان بعد عمیق بشید نشنیدید با یه مثال شروع بکنیم شما روایاتو رو شنیدید که در رابط با مسجده که می که هم توی زمان عمیر علیه السلام هم توی زمان پیامبر اکرم هر دو بزرگوار یک مقتعی چان بکنن تهدید میکنن هگه از مسجد نیایی مسلمان خونتو رو چکار یا فرمودن که به اصلاح خونتون رو سرتون خراب بود این ها یا یه روایت یه این ها پنج شیش تا روایت ابن عدیس هم نفت کرد میفرمایند که اگر یه کوری میاد میاد, میاد من برای مشکل همش بیام مزید یعنی چه کار ما تناقه آقا چیه این قضیه من یه لح دارم بیدیرم یه مرس دارم بیدون. از این مرس من چی میتونم برداشت بکنم من, من شما چی میتونم برداشت بکنم شما چی الان استماعاتتون چی از این روایات چی باید. واجب حالا میگیم بزرگان ما فرمودن استخباب شدید خیلی شدید آقا حالا تو ذهن من مخاطدر پیش میاد چرا فقط همین رممنی و پیامبر این جنس روایات رو نندا بعد چرا خونه ها چش می بعد مهمتر از همه چرا توی تاریخ نداریم یک مورد این کار رو انجام داده باشن توی تاریخ نداریم یک مورد هضرات عملیاتی کرده باشند این تهدید بود فهم اجتماعی از نست من اگر فقط من باشم و استثاره از لفت میگم استحباب شدید، کما اینکه بزرگان هم همین را فهمه ولی فهم اجتماعی از نست میگه که من میرم روایات اهل سنت رو هم میبینم روایات اهل سنت یعنی روایاتی که از این وقایه شده از طریق اهل سنت در منابه شد هم هست ادادش هم بیشتر از روایات. اونجا اومدن شرایط اجتماعی سیاسی که حاکم بوده و سدود اینست رو توضیح دادن دوستان آقا تو هر دو مقصد منافقی توطعه کرده بودن که مؤمنین مسجد نیان خب میدونید اون زمانم خارچیه مسجد نیسته الان نموده دیگه در خواب و مثلا گهبای یادم بیادیه طبایی عوض میکنه و اینا کار کرده مسجد کاملا حکومتی بود کاملا اجتماعصاد بود و چون این پایگاه قدرت مسلمین محسوب میشده میخواستن این پایگاه قدرت رو برگویم میخواستن این پایگاه قدرت رو چکار بکنم؟ تضییف بکنم در هر دو مختل راهبرد سیاسی و حکومتی رو محسومین در پی میگیرن خب این راه برده سیاسی حکومتی برای از زمان ما هم الان هست شما در شعون ولی چی میگفتید ولایت رو اقسامش رو برای فقیه چی میگفتید میگفتید یه شنه ولایت برای فتوه یکی برای غذا یکی برای زعامت سیاسی و اجتماعی که امام خمینی می همین دقیقا برای پیامبر ثابته خب اینجا الان آیا این فرمایشی که هم امیر المومنین هم پیانبر داشتن از جنس خشم اولیه که الان ما هم باید است بله میتونه یه الگویی باشه برای حاکم دینی جایی حاکم دینی یه جایی وقتی پایگاه قدرت تو پایگاه قدرت تو داره تهدید میشه میتونی از این جنس راه بردار استفاده کنید خب این یه برداشته که خود میتونه نداره ولی برای من حکم شرعی درست نمی کنه این یعنی چی؟ این یعنی شما از فهم اجتماعی ناظر بر یک نص به چی رسیدی؟ به یک حکم حکومتی که برای محصوم بوده و رفتی به حکم اولی نداره لذا ما وقتی نمیگیم استمرار دارد الا یا اون قیامت حکم اولی دیگه برای اون حکم حکومتی که اینه نمیگن میگن مناعت جعل حکم حکومتی چیه؟ یک مثلحت یا ای هست که حاکم تشخیص داده و به واسطه یا اون جعل حکم کرده. بعدا وقتی اون مثلحت یا مفتده زائل بشه منشه صدور حکم یعنی حاکم چه بخواهد که نخواهد اون حکم چون موضوعش برداشته شده احکام پشت داره مداره موضوع موضوعه موضوع لطول حکمه پس الان با یه مثال نشون دادیم جایگاه فهم اجتماعی از نصر چیه این یه مثال خیلی ساده توی بحث چی بود در احکام عبادات حالا دعوای اصلی میاد سر این که من میخوام مقاصد اجتماعی حاکم بر یک نصر رو فهم بکنم و تعمیر بدم به بزاره که مشابه اون هست و در عرصه نظامسازی قراره به درد ما بخوره. چون میدونید دوستان تو عرصه نظامسازی شما عمدتا با چی رو به رو با محلهایی رو به رو هستید که برای شیطی نستید؟ ولی از این جده که میدید فهم اجتماعی از نست چون استظهار لفظه قیاس نیست چون از خود لفظ قرار استظهار بکنم چون بحث ظهوره و ظهور هم موجه چرفی هم درش نیست خیلی میتونه دست شما رو توی توصیعی اجتاد و استنباد باز بود خب ما میخوایم بحث رو با روش شناسی شروع بکنیم دیگه گفتن روش شناسی فقه نظام یه کلیتی از بحث روش شناسی بگیم و بعد بریم وارد یکی از روش هایی که در نظام نظامسازی به نام فهم از نست مطرح هست گفتگو بکنیم بعد یه روش کیفی هست به نام تحلیل گفتمان تو این عدبیات های خاک غربی این روش تحلیل گفتمان خیلی نزدیک به این فهم از نست کشه ای از مرحوم محمد جواده بخونی نرکند لذا میخوایم یه خیلی کوتاه یه تعریزی هم به اون روش داشته باشیم که اگر دوستان حالا احیانا دانشگاهی هم هستن یا دانشگاهی نیستن ولی علاقه من هستن که توسعه بدن این بحث ها رو برن نگاه بکنن دیگه ما توی اصول ففهمون بحث استفاده از ظرفیت های زبانشناسی مکاتل زبانی شناسی، بحث‌های نموتیک، بحث‌های تحلیل گفتمان، تحلیل مضمون که به شدت قرابت داره با مباحث الفاظی که ما تو داریم، ما از اینها خیلی خیلی کم استفاده کردیم. در حالی که خصوصا مباحث الفاظ ما بحث‌های اقلی و هیچ استبعادی ندارد که من برم ببینم مثلا ارزم به حضور شما بفرمایید که مثلا آقای فرانک توی نظریه تحلیل گفتمانش از لحاظ عقلی و عرفی و سری اولایی چی داره میگه که من بتونم توی مباحث از باز خودم و بحث ظهورگیری از لفظم و بحث معناشناسی استفاده بود لذا من اینو می‌خوام به اصطلاح اولین بار بحث فهم اشتباهی یه مدار جلو ببریم. ببینید شما اگه همین الان یه سری سادۀ بزنید تو این تا و گوشیاتون که هست، فهم اجتماعی از نظر هم مقاله داره، چند تا مقاله کار کردن. خیلی کار نشد. ولی دهت و اندازه ای که من مثلا توی یه جلسه بخوام برای شما ارائه بدم کار شده حضرت آیتوله ارائه که هم یه نشستی داشتم ممایدن از داریه فهم اجتماعی از رو گفتم من تلاش کردم توی این جلسه فارق از سوابقی که توی فهم اجتماعی از نصر هست یه مقدار عدویات بحث جلوتر ببرم یعنی ارائه اینجا داشته باشم که شما توی ادبیات گذشته این مفهوم چه مقالات چه فرمایشاتی که بزرگان ما داشتن خود واقعاً 600 مقاله ای که دارن این علایذی که ما اینجا داریم غیر از حالا اون توضیحات اصلی و ابتدایی دیگه قبلا گفته نشده یکی تو مثال هاست یکی تو تطبیقاته و حالا تکمیل این نظریه خب برای بحث روش شناسی ببینید دوستان ما می‌خوایم الان با هم یه او بکنیم که اصلا روش شناسی چیه روش چیه روش شناسی چیه نه با هم تفاوت دارن یا نه و اون را هم ما میخوایم پیاده بکنیم روی فقیق لذا با سه تا گزاره اینجا آمدیم به جنگ شما ببینیم که از این سه تا گزاره دوستان چی میفهمن؟ تا بعد بتونیم تبکیک بکنیم روش شناسی، روش و روش تحقیق اینا با هم دیگه متفاوتن شما حتما توی سوابق تحصیلیتون با مفهوم روش تحقیق روبرو شدیم میخواید میگیم روش تحقیق غیر از روش شناسیه روش شناسی ام غیر از روش این هر کدومشون بحث های جدا خب آقا سه تا گزاره اینجا داریم هر کدوم از این گزاره ها رو میخونیم گزاره اول این یه عبارتی از کفا... کفایت الفقه در حوزه در کتاب آنل معرف از که فرمودند فلوذن ندارن فی نفس آفیمالل او, او علاو بعد المؤمنین سقطال وجود چیو میگن وجود چیو میگن خب مشخص شد یک کوزاره الان داره در رابطه با چی صحبت کنه بحث شرایط ساقط شدن وجود آنل گزارے دوم بسم الله الرحمن الرحیم فعلن المتلفه ایذ تفتى له حکم شریف فهم ما ان يحل له الشک فی اول قد اول زن این کجاست کدام ولایته خب کجا اومده خابیده رسائل دیگه اولی رسائل مقدمه رسائل حالات مکلف نسبت به حکم شرعی آقا وقتی مکلف نسبت به حکم شرعی التفات پیدا میکنه سه سطح حالت داره یا برس داره یا زن داره یا شک بعد ساختار پردازش مسائل علم و رو روی این فضا می برند رو روی این ساختار خب سوم گزاره و فطریق و معرفت الاحکام احکامو ها چجوری بفهمیم این توی مجموعه مجموع رسائل شهید سانی اومده یه رساله داشتنی نوید تجمیه کردن توی یه در جامعه هست آقا احکام رو چجوری بفهمیم آقای شهید سانی دارن میگن چجوری استنباط احکام انجام بدون کدوم احکام علتی لا تکنه ضروری هست احکام اعتقادی نه احکام اعتقادی ضروری هست احکام, احکام فرگی میگه احکام من این جوری میگم بفهم. اولا من جراجع اولا الکتب الفقهی میری اول سران کتب فقهی فما دکر و فیه بال اجماع فاقوبه اجماعی یعنی چی؟ یعنی اول استنباز نکن اول برو اونه که اجماعی در بیار اجماعی اجماعی دیگه چه اجماع عمل و مختلف و فی فلا, فلا قد من ردی اله اصله و مخده تا این ثلاثه من کتاب العديد به طریق و به طریق لشاف اول بعد اگر از طریق کتاب ثابت نشود میگن برید سراغ سنت نبوی و بعدا مریدینه آقا تفاوت این سه تا گزاره با همدیگه چیه سه تا گزاره از ادبیات فقه برای شما بردیم که راهنمایی هم بکنم با تجربه که دوستان تو چورتن راهنماییم هم که یکیش ناظره به روش تحقید یکی ناظر به روش، یکی ناظر به روش هست. کدوم یکی از این گزاره‌ها ناظر به روش تحقیق گزاره گزینه داره برای ما روش تحقیق رو میگه. چون دقیقاً حالا من که خیلی مفصل بود، نه همردم بعدی شد چون دقیقاً داره اونجا تو توضیح میده. آقا اول برو اجماع بعد برو کتاب بعد برو سنت بعد سنت به این نه کتاب به این نه حالا جالب این ابارتو هایی تونستی سهش بکنی تو نرمخزار جامعه فکر پیدا بکنی ببینید تای این ابارت تای این پاراگیف شهیدستانی میگن اشتحاد در زمان ما در زمان ما از جهت کسرت و وفور احکام و قراره های فقهی از جهت وفور اقوال فقی میگه سحر هر از سحر از حل من اثر اینقدر راحت اجتهاد الان ببین تو زمان خودش تازه قرن 78 نشون داره میگه اینقدر ما الان حقوال فقی داریم و بحثهای فقی داریم و گوشتغال الان کاری ندارید دیگه جا رجوع به اجماع یا مثلا چی یا اصله بعد اصول رو میگه بخاطر همینه دیگه خاصی نیست خیلی جالبه که توی بحث‌های ما توی بحث گفتمانیه اصلا ما. ما هیچ اشاره به این جنس ادبیات نمید آقا پس این اشتهادی که ما ساختیم که با موج کوک کندن و اینا ببین من نمیگم اون حرف اشتباه اشتهاد سخت خصوصا حالا این اشتهادی که میخوام از بیان شیستن نه ولی بلی میخوام بگم اصلا این یه فضای گفتمانیه ما اصلا متعرض این و ادبیاتیشو چرا شخصیت چی از اجتهاد رو شهید چی از اجتهاد و استنباط می‌فهمه چی داره؟ می‌دونی اینقدر راحتش تازه تو زمان قرن 80 منه ایشون مثلا سال جواهر ناییده. میشه شیخ انصاریه ناییده. اینا رو می‌دید دیگه می آقا بخواید خودتون ازن اجتهادی که چیه. دیگه. خب دومی رو چرا میگیم روش شناسیه؟ و اولی که چرا میگیم از جنس پردازش ساده مساله است دومی چه از جنس روش شناسیه ببینید حالا ما جل و میگیم هر روش شناسی هر روش شناسی متأخر از روشه شما تا درون علوم روش ثابت شده در مقام ثبوت نداشته باشید در مقام اثبات روش شناسی و بروز نخواهد داشت روش شناسی یعنی چی؟ یعنی یه علمی هست اومدن از به رسم شروع کردن تا سالیان و قرمها که ازش گذشته و انباشته دانش انجام شده این ناخداگاه روش هایی برش حاکم شده از زمان امام صادق علیه السلام که اولین رساله های اصولی ما توی امامیه نوشته شد تا همین الانی که ما الان اینجا دوره هم نشستیم یه انباشت دانشی در حوزه یه و اصول الان یه فقیه بزرگواریو بزرگ که بیارید اینجا یه مسئله که بشه دید وسائل رو هم بذارید جگوش با یک روش کاملن شناخته شده شروع کنه استفاد کردن اون مسئله اون روشه چیه؟ اون همون همواشدانشیه که از 1400 سال پیشه حالا قبطرش چک گرفته تا الان و به صورت ناخداگاه در علم فقه حاکم و جنره روش شناسی میاد و به صورت خداگاه این روش رو بسنباد. میگه آبا من که ندارم من علیه اقتصادی شیخ انصاری در مقاصد برای حصر خودشه من کاری به محصر ما کاری به موجودش ندارم من کاری ندارم به این که ایشون داره به یک مسئله اقتصادی میپذل خیلی مسئله بسیطیه من با چی کار دارم؟ با حصیبات روشش لذا مثلا شایسته و بایسته بود در 20 ساله مثلا در صدواندیس سال گذشته کتاب های زیادی در روش شناسی شیخ در هم هم نوشته میشونم که الان ما برای احیاء دروس حوزه مجبور نشو نباشیم کتاب رو کنار بذاریم یا مباحثی از کتاب رو کنار بذاریم چون ما اینجا داریم محروم میشیم از شیخ خانسالی وقتی رسائلش رو کنار بذاریم مکاسبش رو کنان بله البته و البته مطمئن باید آموزشی باشه موضوعات موضوعات اقتصادی عصر حاضر باید باشه یه اشکالی بی کردن تلبهی که مکاسب بخونه همین الان یه مسئله اقتصادی بروسه و الان بروسه نمیشونه الان چهار سرم بسرم مکاسب این اشکال با حس مکاسب که میشه یه شکنه با استخراج نظام روشی بشه و تطبیق اون با مسائل و مساده اقتصادی از مقاسه خب توی یه دره شناسی که الان رسائل مقدمه رسائل اولیم خدمت شما در غمی اتفاق داریم ایشون داره چیکار میکنه یک از به حضورتون که ساختاروندی زیر بنای فکری خودش رو برای چینش مسائل علم و حصول و مثلا. ما این ادبیات میگیم روشه بسیم ولی اونجا که خب ما کاملا داریم یه پردازش تقریب میکنیم میگیم آقا سقوط وجود برای منوشن از ماکه توی این اون میشه یه پردازش سادیم اصلا که حتما همون جمله اول یه روشی برای رسیدن اون سقوط وجود حاجی هست درست خب پس ما حالا یه مثال دیگه هم برای شما از بولو اجتماعی و بولید. این آقای دورچه یکی از این ارکان جامعه شناسی قریبی. یه کتابی داره به نام خودکشی. اومده بررسی کرده که آقا خودکشی حالا صرفاً هم میمخواسته این مسئله رو بپرشده. میخواسته یه بیس جامعه شناسی تحسیز با کتاب خودکشی من مشاهده کرده که در جامعه مختلف بولوهاستون. مختلف خودکشی چجوری میشه،, چجوری زیاد میشه کل چ حالا پردازشی مسئله داده شناسی و روش تحقیق رو من تو ارائه‌هایشون آوردم. ببین مثلا اینکه میگه به سن استن جنس و تغییر با خودکشی هم بسته‌ی وجود داره. این یه پردازشی که تو کتابش آورده. میان استن مذهب جنس و تغییر با خودکشی هم بسته‌ی وجود داره یعنی چه هم بسته‌ی وجود داره. میگه ادم‌های متأهل هرچه ادم‌ها متأهل‌تر میزان خودکشیشون چندتر یا بیشتر، چندتر. هم. جنس مزکر نسبت به جنس است میزان خودکشیش کمتر یا بیشتر بیشتر. آدمای مذهبلی تر، نسبت به خودکشی از مذهبلی تر باشم خودکشین بیشتر میشه یا کمتر کمتر. اینو میره زود آمریکا، مشااللات این پیممانشهایی انجام میده و این هستی میرسه که که مذهبی ترن درشون خودکشی کم دارن حالا سنم میاره یه دستوندی سنی هم داره که توی خودکشی اونها رو آورده که مثلا تو چه میاندی سنی خودکشی هفزهش رو کاهش داشته خب ربشناسی چیه تو عدبیاتشون ببین ربشناسی یعنی کل اون چیزی که ایشون نهدرگی اشتراکشون روش برم میگه آقا ما از جوامه میکانیکی داریم حرکت میکنیم به جوامه جامعه جوامه جامعه جوامه روز، جوامه مکانیکی فوشه به جامعه سه به جوامه که هم سنعتی نشدن، بسیطن میگه همبستگی در جوامه مسئله شیده تو دو در میگه هموستگی تو جوامع میکنی چی؟ به واسطه بساطتی که بین آدم هست سادگی روابطی که بین آدم ها هست خود به خود شکل میگیره لذا شما میبینید بعضی از قصدان های ما اقوام ما توی خیلی که توی قصدان های خاصی اینا خیلی قدیه به خاطر اینکه حیات به اصطلاح شهریشون هنوز حفظ شده هنوز مدر به معنی امروزی ما نشدن متکسر و مستقل نشدن استقلال هویتی پیدا نکردن هویت خودشون رو توی همون قومیت خودشون تفسیر میکنن لذا خیلی هم بستن یعنی اگر یه نفرشون دعواش بشه بزنیش کل چهر میاد خلاصه حسابتون میشه. این آقا کل نردگیش رو روی این همبستگی اجتماعی در جوان میکنه و جوان ارگانیکی بعد میگه آقا من یه ای دارم در خیلی صنعتی سنتی میشن و ارگانیکی میشن استقلال هویتی پیدا میکنه چون لیبرالیس اومده دیگه با همسایت پیا و باردمان شاید ده سانم میکنه ولی اصلا میمیشنم نمیده چند تا بر چیز رویه میگه من اگر بخوام همبستگی رو توی جوامع تامین بکنم، باید کار بکنم؟ باید ریز راه حلش کل روش شناسی ایشون توی جوامع ارگانیک حرکت از جامعه می‌کنه به جامعه ارگانیک. ما این میگیم روش شناسی اجتماعی آقای دورکی. ولی روش تحقیقش چیه؟ همون تحقیقاتی که رفت انجام داده. بعد همین تحلیلی که علانی رو ارسی دادن، همین رو مدل کودکشمیاره پیاده می‌کنه. حالا روش تحریبش چیه؟ همین روش پیمایی شد مصاحب است مصاحبه بگیره می میره ولی مصاحبه میده ملت برد کنیم چه روش درد ببینید دوستان من حالا اینجا که میخواستم برای شما روش تحریبهی هم دیگه حالا اینا رو میذاریم تو همین مثال ها ارز کردم آقا روش چیه؟ روش چرا ما اصلا تو نظامسازی فقهی نیازمنده روشیم؟ روش اون نقشه راهی که توش تولید نظریه انجام میشه به واسه دیگه اینه که من میخوام عرض بکنم روش خیلی مهمه. اگر روش شناسی در نظام سازی نباشه تولید نظریه به هیچ عنوان بهتفاقی یعنی ما تا ده سال آینده 1400 چند 1400 و 11 میانیم همینجور دوره هم میشینیم باز از ضرورت اگر روشی که قرار توش تولید نظریه بشه نشده نشدهه، منقت نشده باشه کتاب توش نوشته نشده باشه؟ میگن آقا طرف بعد 5 سال ش سال شده باشه تا بتونه مثلا رو نه دانش بعد بیاد به محله و وغروره تا نقد بشه توافوت بشه تظ بشه. به تعدیل هم نمو تو تزورده که رحی صحیح رحی صاحب طولیدوشید لذایشان به شما یک وارد شدید قلب بزنید از یک یاد داشت برای سایت اجتحاد و رسا بودونم همین سایت فقه حکومتی گرفته تا مقاله علمی یا همون علیف و جویشی قدیم تا چطا نجید آقای جمعونه مثلا تازه به دوران رسیده چه رو باید کتاب چه مقال بعد ها مثلا مقلبی میرن بهش عمل میکنن ما مثلا حجت این نیست بعد هر نزده بشه چی این قرآن یکی همین درست کرده دو تا حکومت حکومت حالا ما میفهمیم با وقتی ما حکومتی و تحریفش و حرمانش و طرفش نخ بکنیم میفهمیم چی چون آقای هلینوز همسزن، آقای همینی باقی که همسزن، آقای عراقی گفتن، آدمی تهیرانی چند ساله داند میگن، آقای از شما عراسی داند میگن، توی دیگه گرفته شده؟ رفع شناسی که آقای موبریتی، از ازایتون موبری درمان سر شدن، این پنمونه دفت میشته، اگر این اتفاق میفته نظریه در خلعه تولید نمیشه این که من بیا حالا اینجا بگم آقا مثلا حالا بگم به نظر من حوزه فقه مزار به این نص میتونه ارتباط برقرار بشه فقه در حوزه فقه دیگه به این نص میتونه ارتباط برقرار باشه ولی هیچ روشی نداشته باشم که بتونم این روشو رو چیکار بکنم نفشش بکنم ابصارش بکنم اثباتش بکنم هیچ وقت این دانش توصیبه داره این از اون بحثه بسرگی و رو با بگیم ازش میبسه جماعه پارزانی یه تربیری دارن یه تربیری داشته هاشون که دیگه خصف بکنیم بحثه رو بشه ایشون میفهمن اگر ایل را در خواهیشون یک موجوده زده بدونیم بدن, بدن نندریه حکومه چی را داره؟ قلب یعنی یعنی باز دوباره بدیم شما سال 1411 یه دیجا بشینیم در رابطه با ادبیات نحسامسازی فکری صحبت میکنید. ولی کش تولید نظریه نشده چیه یه مرد است؟ یه ما داریم در رابطه با کلیات حرف یه تجربه ای جهان قربخی اولوی انسانی رو روی چشم ما بزرشده تجربه شکست خوردن پس ما نمی‌بینیم قاعده حیات از این تجربه ولی این تجربه در درس عبرت واسه ای توی یه تو این تجربه شکست خوردید گاهی وقتا ما نقاط مثبت و نقاط منفی هم دیده میشه مثلا یکی اینه که هر موقع اینها یه فلسفه علم هر دو روش شناسی زدن هیچ موقع بدون تطبیق بر مصادیق نبود ولی متاسفانه الان که ما داریم ادبیات رو روش شناسی می‌گیم سامه. یعنی من, مثلاً من توی مثلاً همین از مثال امرار کنم یه مقالبه توی مثال همین فهم از نه است مثال فکر کم میارم میرم تو عدبیات نظریه خودم هفتون سال زنم میرم مودام باید مثال بیرم مودام باید نشون بیگه به بیر من اول صحبتم رو با مثال فهمشون بیرم تو جا رو خب حالا این شروع که ارد یه کار بیره. نظریه خجم قلبه اصلا علم بدون نظریه نمی شود تا نظریه پرداد نظریه چی آقا؟ نظریه یک گلگوی کلان علمی در حوزه اون موضوعی اون علمی هست که شما کارید به سبب شرابیه پردازه کنید بر تمام جوانب علمی علمی منوید و متقیرهای که تو اون علم هست رو تحت شمولیت خودش قرار مدید یعنی هیچ جایی شما یه حرفی بزنید اون از نظریه نقص بشه اون ای که تو نظریه گفته شد خب نظریه در روحش به قلبه مبادی و مبانی حکم نفس و روح رو دارن مبادی و مبانی تمام سابقه فقه و مصول ما مبادی و مبانی ما تو نظر فقه خب آبا روش شناسی قراره بیاد چیکار بکنه اینجا میگه روی شناسی این نمیست و او رو قرار به چی وصل بکنه؟ به که نظریه یعنی من با نظریه نظامسازی فقهی از موادی فقهی و اصولی شروع میکنم و میرسم به نظریه اجتماعی توی همون تحریقات بزرگاه توی مواجهه با مسئله زنان که ارمان پاژناشینه قلاب و هیچ گلگوی واحدی از افتدای قلاب اسلامی زا برای مواجهه با مسئله زنان که قلاب سلام مندشتی گلگو، گلگوی چنده ناکنیتی یک کتابی هست آقای سینا که الگر که ارمان معاون وزارت ورزش و هست داره به نام مدیریت هجاب، تاریخ مدیریت هجاب تون جنوب از ایران حتما از اگر در ب اجتماعی و اینا داشت بنابراین از سال 5960 که مسئله هندوب مطرح میشه تا الان ها... الان 3214 هم نوشته میشه هر بار سیاست شورای انقلاب فرهنگی وزارت کشور دولت نهادهای مثلا مختلف برای مواجه با مسئله پدیده بده بود چی بوده بعد پیمایش‌های علمی ما میگه که وضعیت بعد اون سیاست چی شده؟ مختب مختب شده، تا رسیدیم بعدم این که این کشف تو تهبان می‌دهد، چرا ما هر بار، این ای که بگیم مختب این هر بار یه چیزی بوده یه بار وقت سر یه بار تا دوچومه لباس مثلا ما خانم کارمند دولتی رو مشخص کردن بچی بگوشیم بعد یه بودن رو با ایسا کلن شروع کنیم کلن شروع کنیم میخواییم بقید کار آموزشی بکنیم آموزشی و فرقنی بریم مثلا تو مدارس بکنیم لوازم اومدن پیمایش انجام جامسن دیدن در شد حالا جالب در که یه بار تو ماناظرهای نسید یا وای سوزنچی شده شده. تو بعضی از این پیماهی شد کسایی که آدم روی بودی در حجاب هم اعتبادات دینی بلای هشتاد درصد این ها اعتبادات دینی دارن بعد یه مثلا بایده 5 قائل به حجاب شرگی قائل به حجاب که من دارم اینی که همین خودم اینا نه خب پس نظریه اینجا میاد به درد من میخوره که من توی مواجهه با یک مسئله چهل سال درگیر تلورانس نموشه یه جایی برسم بدونم اگه تو هر من بکنم باید چه کنم الان فرصت، نیست ولا علمی دقیق بهتون نشون روی این مسئله اجتماعی که همین عرضان قبول شما نزنگیه که قراره خراره بشه به قراره ساریم چطور از موادی شروع کنیم و میتونیم به نظام سازی برستشونیم توی مسئله باقیش داریم حالا سر کلاس ها من مثال فوتبال مختلطی که هم دو سه ماهی پیش دودان اشقده ای اجتماعی رو به دهیمان مطرح شد اون مثال رو برده کردن و از این دوستان بودن از رفقا فما می گفتن آقایین این از این محکام ما چطور می تونیم به سیاست تو عرض خزام به سیاست گزاری مواجهه و, و اجتماعی چی یه مصد درخواست فوتبال مختلطی بود که این آنشان بودم به من از افتاد و بعد دروش رو کنم. همه برسه بود. رفتان در بود. سوال که همیشه دیکنه باشه. آقا من برخور به سریع بکنم. بزنم. منشیری بکنم. ستاره دار بکنم. اخراج بکنم. فلا بکنم. یا اینکه نه. میگه دیگه. یا دیشی. یا آقایی من. عصرش رو پشتیم. موقع که کسی داره هیچ گلگویی نداری از طرف حوزه از طرف دانشگاه از طرف نهاده علم که به مجری به مجری قانون بگی آقا تو چه لایه این به چه نخمی عمل بکن ولی من میگم از اخوان از اصلاف او در به لایه بندی درسیم نظام سازی کن حالا این میگه برسه کن بس این طولی رشده هستم که بایدو گفتم تو دنیا یه زی مراکزه روشه ماسته من از شما بگم آقا علم کلام کنید آقا علم کلام روشه ماستی توضیح رو ما هم بده که سه دوتون قوضای این آکه من روشه آقایی میکنه این اقتصاد و نظریه پردازانی درستگاه چلاقی ایمانی روش شد روش استمراز رو روز سمانیه داشتیم ولی اینجور روز سمانیه ایچ موقع روش پسر نمی ولی اونها ای خواهی بر از زمین مرکز دل. فقط فرزند بیشتری مرکز می‌دهد. من دادم اون یه دزد سومان دزد سوم. فقط فرزند بیشتر. مگر که در و رو در دانشکده منجز روشناسی دارشگاه گروفان هم منجز روشناسی دارشگاه گبراطی یا این میشه خب اهمیت روشناسی گفتیم روش یه این دا آدم هم فیده شمی یه آدم به نام فایرابه فایر با بود رو اصلا هیچ عمره علمی ندارید هیچ عمره علمی ثابتی ندارید مثلا معرفت هیچ نقاض مستفلی نیست شما ها دوچار شمایی که توی مدر اومدید توی مدر اومدید دوچار علم زندگی شد مثلا یک یکی به فرشته باشه خواهد وجوده فرشته در عالم حسیز باشه باقا باقا برنامه ریزی زندگی سبچ زندگی توی ناظره به و و علوی و واقعی ملائکه در تدبیر هر زندگی باشه چون هیچ هو ادوی نیست. نیست. در تو چنین که پزشک صحبت می‌کنم عالم امور روح و در روح تو. ماشي. نیست. الچی از نظر ای تو الچی از نظر من خاص میگه شما پدر ملت و دنیا رو دربارید با همین هل با همین روش چون روش حاکم، تا همین علاقش هم روش حاکم برگرد چیه؟ درست خلاصه حال از این ها با کتابش پردار کتاب سیاه خیلی قشنگید از موضوع شما که دام داره اینا ترجمه شد خواستیم یعنی خواستیم کلم ببینی در چی ببینیم یکی اینکه تارو رو که هم مدنیه خیلی استراباده اینا تماما توی فضا خب یه عبارت یا فهم شایستد رو بردم در باقی رویه چون قدر دو دوزشت می دو رو میزنیم میریم عبارت فهمش در موید نفسیم عبارت اسالی که کنیم از. دقوان و محل نظاه فهمش رو از نصبو شخص شد درست؟ به ما فهمیدیم که توی فضای به اسطلاح نظامسازی فتحی یا حتی تو فضای خود فقاهت اندیش رنزه فتحی با رند شناسی که گفتیم برای اینکه به نرزنگی برستیم تو خود دل همین گزارای فکری تو مجود هست بنا چون ردش رو سپنون و فهمه شمایی یعنی از نصر خوابط دردشون آقای شهیستر من داده این که فقط اینو زده تذکر داده رفته حضرت اوستاد بزرگاه موزیم و که بهتطاقیه که شه ما هم ایشون یه که من خودم حضرت پایچنگی های شاید. شایسته چوریه ده کار گوشه هم که روزه کار داره. از لحاظ تئوری میونه مثلا ایشون حالا مثلا تو نظریه سیاسی که به یه سلسله دراساتی باشه مثلا یه جلسه اومیم نظریه ایشان رو تو فخو نظریه ایشون باعث القوت یه مشت به ذهنی اجتماعی در ذریع تو کل تاریخ تفاحت اسلامی، ایرونی زیدی که اسماحی دیگه به مختلف سابقه نمداریم که چی میگه آبای مثلا در که اصفاقی نار بلدیم بسمه آبای مثلا موسردی آبای موسردی شما الان من دیجه استنبات فقه نظام اقتصادی که کنیم تو استنبات فقه نظام اقتصادی خود اشتهاد از عدله به اون بس, بس نظریت رو به گوبه سوید، حالا این شبکه امسجام نظریت رو به هم زده برای حفظ انسجام نظریت میکنید، از رنگ اشتهادی خودت رو دلو کنید برید رنگ اشتهادی اون برادر ناتنی عهده بخشه مستقا هست مثلا برادرت اهل سون از اون رنگ اشتهاده شدید، بذاری این چه از احصال رو آقای به خودشو کنم آقای از آقای از آقای به سر باقید آقای آقای آقای آقای آقای ملکزازم آقای از آقای صدقادم آقای اینا رو چهایش بکنیم گفتن که من به شهیستن که من گفتم میتارم خیلی همونی بحر نکردم به اصطلاح تنگیه با من و به همون بحث رو بعضی همونم کار کردن با ادله مثل این ظهور ادله عدم جواز جوازه و دوره مستهد از رایش توفه فردیه اما ولی خدا عرضم اینه یکی از حالا رویش های که تو فرقندس اومتر بکنه این فهمیش رو بکنه زیادی به است که از فضیحان مسلمان از خوبه های مقیدان مرسا و ترین نظریه را در باره فهمیشتونه از آقا چرا میگن گسترده ترین نظریه؟ این یعنی که این نظریه ثابت داشته مباحث مباحث سیره باعث مذاهب شریعت استعباداتی که ما توی قیاس مستنبطوری نداریم همه اینها میتونه یه جزی از نظریه فهمیشت باید ولی نظریه فهمیشت باید ن کامل کردن جایگاه بودتوش مچخص میتونه باشه تا باشه باشه. ولی فهمیشت زابط منبشه من یعنی چی؟ این که شما فهم اجتماعی داشته باشید تو فهم اجتماعی از نه صحبت بر اینه روایت رو شما میادی همون روایت نماز که عرصیت خدمت بود استقبام شدین نماز و در مسجد به باسطه این که تحدید کرد خواهدون خبار رو میگه روایت رو شما میادی روایت رو میخواید مدی نمیخواهیم میبینی که خیلی بار مدید شده می ظهور آقا ظهور هست یا نیست ظهور شد فهم اجتماعی از این روایات رو به تو اهل سنت ببینی زمینه بکنی با, با دلالتهای لفظی بگه نهایتا یه برایت داره اون مصدر کل تا جایی که فزایشیه شما جلسه تمام شود. بله. فقط من بشم. یعنی توسعه دادن شما این جلسات و و مقالات و که شما بعداً شده برادرید میشین. خامیشو از توسعه دادن میشه چی؟ یعنی من میگم مگر نمیگویید که یک عناصر و ارتكازار اجتماعی دخیل هستند توی فهم این لفظ؟ ایشو حرف ارتكازار زد. میگه آقا یه گفتمانهایی تو از صدور این لفظ بوده مثل همین چیزی ارز کرد اینها اثر میذارن توی خود جیدش رو من کردن که شماها بعدا بعدم به تو فهم شما یا و شوشیدی که آقا من بیام می میگم می بگیم انجیزه شخصی انجیزه شخصی به عنوان عرضش ها به و ایدئولوژی حاکم بره است و علومی که نازل اون افراد و اون اجتماع هست چه هایی هست و میتونه تو فهمشه اون از نظر من تعصیم ببره. یعنی ساختار میگه یعنی دایره یعنی توسعه دانش یعنی توسعه حضارتی میگه من میدارم اسمینا دارم قاعده این که شکل مهمتر نمامونیه برای این وقت اجتماعی تحسیز کرد مشکل بزرگی را در فکرد اون مشکلی های شکسن آن مشکل این است که بسیاری از احکام در قاسا و برسش های راویان آمیان نمید شده و از ابتدای شکل تحسیزی و ابتدایی و صرف زبان خان گذاری بیان نمید وز وز این حالا اینجا بحث چه معنایی یا شخصی یا و یا با می این گونه وجود شده کی در در شده برای شخص تمادیش اینجا کدش نشون میده که بزرگ مهندس ما محروم شیر صدقیتی که بسیعی از روایات چی؟ روایات تبه جیاهی این تبه سو ندیگرد شد محدث. محدث، مثل شابرگش روایت محروم شیر روزو به بحرومی ایشون به روایت مطلاف میرسه که مخالف مسلمات اعتقادی ماست ولی نمیگم که روایت چیه روایت به اسلام میرسه تحقف بکنه قاضی نیست رو از این چنان بزنه برای یک ای ای اخباری این ای محدث یا خورگران چقدر حدیث مهمه ولی این قدر این قدر این قدر ای این قلب این روه شنازی آسیزه به رو داشته که چیزی از این رو میزاره که این را شده میگه بیدونی این مشکل که رویات قضای شخصی هست قضای جوزیکی هست یعنی که در این یک جوزی هست یعنی همین آقای مزوری های گرم میدونه شرایط هستن و به شرایط امام کتنان سرمان خوردن امام ناظر برای من مثل همون هم در زمان خاص شخص خاص شرایط خاص من در هرمان از حاضر هم در حالا این که میگیم درواییات تفه سونای سینای ما کنیم ما درزاری هست ولی میخوام بگم روش شناسی چه قدر دامنه تصیلیش حالا یه خود همین روایاتی همی خوب. هم رو اه... که مهانده می کنون رو بزرگی کرد همین که رو بودا دید چونسی که این مزایش همشون می کنید خوب بگیم این کار جروجنه در فرصت نشون می این چیز درد تحییم شما که آقاید خوب ما هم به این هست قاید به فرمی از نسل هست فقط تبدیل به آقا موخه خیلی بروسه شد. تبدیل به روش شناسی نشد. تبدیل به انتباهات چهرگری و چشمی رو میگیری که یعنی ارتباهات گرفت موضوع شما فقط میشهده که این روشه به به نشد. استقراض نشد. و لاحظه این عبارت مرموع حقیقه ارگرده به کلیدیت شبیه تو احکام میکرده همینجوری یه دوای وای استفاده گلداشت استباد میکنی در محصر بحجر دیگن. ما حتی مجال نیستیم به طور مطلق به زباهر کرام عمل میکنیم وقت چه به زباهر کرام دیگر این این شون هم که های من به هر دویان بعد احکام به انتباه خصوصیات و اخواره و ازمانه وله امکنه وله اشخاص بعد برای آخرش میگه که و خوبه هم تو تشکیز زمن این یه اعمال و از آمند خاطر اینکه که جنس اطلاعات و داده هایی که از احوال و اشخاص و توی که داخل توی اصلاعات یه رهبر داره من که بزنم توجه یه بوشن چه هستم اصلاعات با ندارم خب باقا یک تحبیر ایشون موضوعات داشته باشیم توی این موضوعاتی که اینجا تو توی تشتک این موضوعات ملاک هستیم ملاک احوال و ازمینه و زمانها و چه باز برده هست تو سپساعت شرایطی که من از ما مستقیل میشم توی تورمانه که به هم میده پایین میاد دارم با اونی که تو زمان زمانه مستقیل مستقی میشده یه چیه؟ فقره ملاک فقر برای مثلا افتا بی نیازی مالی بزر نفقت زوجه نفقت زوجه که از اون عمل به معلوم خازنان که اومده و موضوعات مختلف این که ما در مثال، مثلا بازی مثال ترقی بزنیم آقا معمولا توی یه فرقه ما رو توی یه برس افتاهم بسید و رو بسید میتونستن لباس و ضرورت رو این چون بزن با یه خریداتی میخوادید بسید بسید این یه چون یه الان یک کار کومین اومده یک جدی دارم نیدی. نیدی که دست کنه با هم میگی که که میگیم هم که تا خوردن ریلوازی حالا این مثلیه یا اینیه سرکس که زمان این مثالش میگه بازه میدیم و بیدن بیدن در در پسه اومده ملال شده بودا اینا تفاوت داره. یه جایی تحصیص ملاک یه جایی تحکیب تحقیل موضوع حشبه این همش داره. همش چیه همش فرمی شده شرایطش خب یه باید دیگه هم بگرده بودم اینجا از یه استعدایی که از من توصیه شده کشون هم پنام میگن دیگر دیگر چیز هستش رو هم به اجازه دیده میخوردش رو برن چیزش رو کسندش رو برد چربه صحیح خیلی زیش دیگر یه چیز ميخارش برند. ميخارش برند. سوال تو خیلی پاسخ و جاگر برده برده شکل که زمان هیشون تو زمان ماه این برده اخدا شرایط زمان مرکان رو تو زمانه ازشور برد نموده و این وقتی رو ناختا رو برده ناختا شو برده رو این اختلافی شرایط سیزیشت رو برده بسیار از از ناسی از این شرد اشتماعی آنکمر اصل از نه از من اشتماعی در از حالا من میخواستم دیگه بعد بارده مثلا مسئله اجتماعی جدید میشم یه اما مسئله داریم که نام مدیری حالا جدید آلا از, از در باری تون بفت بشتماعی از نزد تویده گروبا قاعده بکنم که یک رو سکیست تحق خب اید سوالی چیزی هست در خدمت شما هست یه سال آواز عجبه درسته تعمیم آم، بره به این D's PYM Commons MM M cción adult-wh barrels apare Lucaricadia cuarto. DVD 17 in a book Giassiлось 18 out of December. Peps M Aubain erики. Mекс dignitas panel gestvan-가는- PYM Store-9. PYM Director-Nutsu PYM São M.清 Mอกwave Jun bajíl-Q pneumo41. P ensej College-Chiff3-QOLial 중-MICRRのは Holy 45衣 Doch!�이 New Thomas Cram A.B caller-Bahar-t 이름 Vai-Bahar-Bahar 2, brand new Simon Mo� billow hin Где M einfach sometimes eles são um então o mundo é